حکایت یکی از سلحای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود و کرامات مشهور به جامعه دمشق درآمد و بر کنار برکه کلاسه تهارت همی ساخت. پایش بنقزید و به حوز افتاد و به مشقت از آن جای خلاص یافت. چون از نماز بپرداختند، یکی از اصحاب گفت، مرا مشکری هست، اگر اجازت پرسیدن است، گفت، آن چیست، گفت یاد دارم که شیخ به روی دریای مغرب برفت و قدمش تر نشد، امروز چه حالت بود که در این قامتی آب از حلاک چیزی نمانده بود؟ شیخ در این فکرت فرو رفت و پس از تأمل بسیار سربراورد و گفت نشنیده ای که خاجیک آدم علیه سلام گفت لی ما الله وقتون لا یسعونی فیه ملکون مغربون و لا نبیون مرسل و نگفت حلت وقتی چنین که فرمود به جبرئیل و میکائیل نپرداختی و دیگر وقت با حفظه و زینب درساختی، مشاهدت الابراره بین تجلی و استتار می نمایند و می رو بایند. دیدار مینمایی و پرهیز می کنی، بازار خیش و آتش ما تیز می کنی، او من اهوا به غیر وسیلتین، فیل هقونی شأن ازل و طریقا.